و 327 بومی‌ها از من خواستند که سرگذشت خود را برای آنان شرح دهم و بگویم اهل کجا هستم و چه حادثه ای مرا به اینجا کشانیده و چگونه جرأت کرده‌ام به این قاره رودخانه پا بگذارم وقتی میخواهم به کجا بروم من هم قبل از هر چیز از آنها خواهش کردم به من غذا بدهند بلافاصله چند غذای خوشمزه برایم حاضر کردند وقتی سیر شدم و نیرویی در خود حس کردم آن چه بر آنچه من گذشته بود را شهر دادم سیاپوسی که به زبان عربی آشنایی داشت سخنان مرا برای بقیه ترجمه کرد و وقتی صحبت‌هایم به پایان رسید مترجم گفت که دوستان من پیشنهاد دارند که شما را به نزد سلطان برین تا این حوادث شگفتانگیز را شخصا برای او تعریف کنید زیرا ما نمی‌توانیم با این دقت و درستی حوادث را تعریف کنیم و این یکی از شگفت انگیزترین است که تاکنون شنیده‌ایم موافقت کردم و بلافاصله اسب آوردند و مرا رو روی آن جای دادند و یک نفر از آنها هم به عنوان راهنما در پیشاپیش اسب به راه افتاد و دیگران هم بار و بسته های من و تخته شناورم را آوردند ما راهپیمایی خود را به مقصد شهر سرندیب آغاز کردیم و شهر مزبور در جزیره بود که ما در آنجا پابه خشکی گذاشتیم بومی های سیاه مرا به حضور سلطان بردند و من هم که به شیوه‌ی آنها آشنا بودم نزدیک تخت سلطان بر روی زمین افتادم و بوسه‌ی ادب به جای آوردم سلطان فرمان داد که به پا خیزم و با نهایت احترام مرا پذیرفت و از من خواست که نزدیک تخت او بنشینم نخوست از نامونشانم پرسید من هم پاسخ دادم که مرا سندباد بحری مینامند. سپس سلطان پرسید چطور شد که به این سرزمین پا گذاشتی؟ و آخرین بار از کجا به اینجا آمدی؟ من هم بدون کم و کاز آنچرا برای بومی ها گفته بودم برای سلطان هم باز گفتم سلطان از ماجرایی که بر من گذشته بود آنچنان خشنود و متحیر شد که فرمان داد سرگذشتم را با آب طلا برشته یه تحریه در و در محلی که اسناد سلطنتی نگهداری می بایگانی کنند سرانجام تختش شناور و بسته های جواهرات و زیورالات. به حضور سلطان آورده شد و در حضور او همه آنها را باز کردم و تمام یاقوت ها و زمرد ها و سنگ های کریستال و چوب اود و خلاصه آنچه با خود بار کرده و آورده بودم یک, یک از نظر سلطان گذراندم سلطان تو به عود و انبر را مورد تحسین قرار داد ولی از همه جالبتر سلطان یاقوت ها و زمرد ها را که از آنها هیچ در خزانه پادشاهی یافت نمیشد پسندید و از آنها بسیار خوشش آمد و از تخت به زیر آمد و آنها را از نزدیک بررسی کرد و گفت اینها بی‌نظیرند من که متوجه شده بودم سلطان با چه علاقه و توجهی به این جواهرات می نگرد و چه لذتی از مشاهده آنها در خود حس می کند و با چه تحسین و حیرتی یکی را پس از دیگری تماشا می کند در برابر سلطان سجده کردم و با استفاده از این فرصت عرض کردم ای سلطان بزرگوار نه تنها جان من در اختیار سلطان است بلکه تمامی این جواهرات که در روی این تختیر شناوت جای داده شده است به سلطان تعلق خواهد دارد و از حضورتان درخواست دارم آنها را به عنوان هدیه ناقابلی از من بپذیرید سلطان در حالی که تبصمی برلب داشت با ملاطفت و مهربانی گفت ای سند باد از سخاوتمندی و بخشندگی تو متشکرم، تو مرد نظر بلندی هستی این را بدان و مطمئن باش که من هیچ به مال و ثروت تو ندارم و هرگز راضی نیستم آنچرا که خداوند توانا به تو بخشیده است از تو بگیرم خداوند به تو بیشتر ببخشاید و از ثروت خود لذت ببری ولی تو تا مدت زمانی که در این سرزمین هستی باید در نهایت رفاه و آسودگی زندگی کنی و از مراحم و سخاوت ما بهر من شوی. من در برابر سخنان سلطان سپاسگزاری کردم ضمنا به عرض سلطان رساندم که سخاوتمندی و رادمردی او بیمانند است. سلطان به یکی از ملازمان درباری دستور داد تا از من پذیرایی کنند و وسایل آسایش و زندگی پرشکوهی را برای من فراهم آورد. افسری که از طرف سلطان مامور خدمت من شده بود، ماموریت خود را به شیوه‌ای نیکویی به انجام رسانید و خانه‌ای بسیار زیبا و بزرگی که بیشتر به قصر شواهد داشت برای من تهیه کرد. و وسایل و لوازم و نیازمندی‌های زندگی برایم آماده کرد. برنامه من از آن پس بدین قرار بود که هر روز صبح در ساعت معینی به حضور سلطان شرفیاب می‌شدم و چند ساعتی را در حضور او بودم و بعد با اجازه سلطان به گردش در جاهای دیدنی شهر می پرداختم و به هر کجا می‌خواستم میرفتم و هر روز محله‌ای را بازدید می‌کردم. جزیره سرندیب از لحاظ جغرافیایی در مدار اعتدال طبیعی قرار گرفته و شب و روز با یکدیگر مساوی هستند و هر کدام شامل دوازده ساعت می شوند و بهترین آب و هوای مناطق متدل را دارد. این جزیره دارای طول و عرض برابر است که هر کدام هشتاد فرسنگ درازی دارد. پای تختیر سرزمین در انتهای دره ری می واقع شده است که در وسط آن کوه بلندی سر به آسمان کشیده است که بلندترین کوههای جهان به شمار می آید در این کوه معادن فراوانی وجود دارد که از همه مهمتر مدن یاقوت و زمرد و, و مواد مدنی دیگر است و همچنین نوعی سنگ یافت می شود که با آن می توان فلزات را سیغلی کرد و سایر سنگهای قیمتی را با آن برید و آنها را هموار و سیغلی کرد در اینجا هوا همیشه متدل است و اعتدال هوای بهار را دارد و گیاهان درختانی که در این سرزمین می رویند در نقاط دیگر جهان یافت نمی شوند. درختان نارگیل و سرو فراوان دارد سیر مرواری در بستر رودخانه بسیار رویه است و در بعضی دامنه ها الماس وجود دارد که آن را استخراج می کنند در این شهر محلی وجود دارد که می گویند حضرت آدم پس از رانده شدن از بهشت به امر خداوند در این کوف منزل کرد من هم به قصد زیارت آن محل رفتم و میل داشتم تا بلندترین ارتفاع کو سعود کنم. هنگامی که از این سفر مراجعت کردم به حضور سلطان رفتم و از او درخواست کردم که اجازه فرماید تا به زادگاه خود مراجعت کنم. سلطان با مهربانی و ادب فراوان درخواست مرا پذیرفت. من که قبلا با خواهر حدیهی به سلطان تقدیم کرده بودم در حین خداحافظی هدیه بسیار گرانبها که به مراتب با ارزشتر از آن چه بود که به او داده بودم به من مرحمت کرد و در همان زمان نامی به من تسلیم کرد و از من خواست که آن را پس از فرود به بغداد به حضور خلیفه ی مسلمین امیر مؤمنان هارون رشید تقدیم کنم همچنین هدیه گرانبهایی هم به من داد که به خلیفه تسلیم نمایم ستر از من خواست که ارادت و دوستی او را به اطلاع خلیفه برسانم من هم در نهایت ادب نامه و هدیه را از سلطان گرفتم و اطمینان دادم همین که وارد بقداد شوم به حضور خلیفه بار یافته و معمولیت خود را انجام خواهم داد قبل از آن که به کشتی سوار شوم سلطان دنبال ناخدای کشتی و بازرگانان مسافر آن فرستاد و آنان را به حضور آوردند و سلطان سفارش کرد که از پذیرای و مراقبت من در هنگام سفر کوتاهی نورزند و از هر جهت آماده خدمت به من باشند و احترامات شایسته به عمل بیاورند، برند نامی پادشاه سرندیب بر روی پوست زرد رنگی بود که حروف درشتی به رنگ لاجه روی آن دیده میشد و عبارت زیر را در آن نوشته بودند پادشاه سرندیب که هنگام حرکت یک هزار فیل پیشا پیش او به حرکت در میآیند، پادشاهی که در قصد او ده هزار دانه یاقود آنجا را زینت بخشیده و در خزانه سلطنتی او بیست هزار تاج آراسته به الماس یافته می شود به خلیفه بزرگ هارون و رشید درود می و هدایای زیر را ارزانی می دارد گرچه هدیه ما به شما ناقابل است اما در برابر برادری دوستی که ما با شما داریم این را به نشانه دوستی بیالایی شما بپذیرید و آرزومندیم که شما هم همین احساس را نسبت به ما داشته باشید با امید به اینکه ما شایستگی دوستی شما را داشته باشیم ما در برطوی روابط برادرانه با شما سوگند برادرانه یاد می‌کنیم و از پروردگار پایداری برایتان آرزو داریم هدایای پادشاه سرندیب عبارت بودند از یک یک فنجان ساخته شده از یاقوت ناب به بلندی نیم متر و زخامت سه سانتی که انباشته از گوهرها و مرواریدهایی بود که وزن هر دانه سی گندم بود دو یک قطعه پوست مار بزرگ که هر یک از فلزهای آن به اندازه یک سکه زر معمولی بود و این خاصیت را داشت که کسانی که روی آن می نشستند هرگز دچار بیماری و کسالت نمی شدند سه چوب عود به وزن پنجاه هزار درم هر درم معادل شست گندم است به اضافه ی سی گندم کافور که هر دانه آن و اندازه یک دانه پسته بزرگ بود. چهار، یک کنزک بسیار زیبا و ماهرو که زیبایی از چشمها را خیره میکرد و سراپا پوشیده از جواهر بود و گرانبهاترین به را به ها داشت به به فرمان ناخدا بادبانها را کشیدن و کشتی در روی دریا شناور شد. بعد از یک دریا نوودی طولانی و بسیار لذت بخش به شهر بسته رسیدیم. در آنجا از کشتی به خشکی آمدیم و از راه خشکی به شهر بغداد رفتیم و از آنجا نامه پادشاه سرنديب را برداشتم و به دربار خلیفه روان شدم در آنجا خود را معرفی کردم و پیام شاه سرندیب را عینا به حضور خلیفه اعلام داشتم و کنیز ماهرو و هدایای شاه را تقدیم کردم مرا اجازه ورود دادند و به پیش رفتم و کنیز ماهرو هم دنبال من آمد و خدمتکاران هم هدایا را آوردند تا به نزدیک تخت امیرالمؤمنین رسیدیم پس از ادای احترام و بوسیدن زمین علت حضور خود را بیان کردم و بعد از ایراد بیاناتی نامی پادشاه را تقدیم امیر کردم بعد از اون که امیر نامی پادشاه را خواند روی به من کرد و پرسید آیا پادشاه همون طوری که شهر داده این همه ثروت و دارایی دارد و دارای این همه بزرگی و عظمت است؟ من برای بار دوم زمین را به نشانی ادب بوسیدم و به عرض سندم. یا امیرالمؤمنین. آنچه آنچه سلطان سراندید در نامه نوشته عین حقیقت است و من شاهد آن بودم هیچ چیز تحسین‌آمیزتر از قصر پادشاه و عظمت آن نیست هر که شاه میان مردم میآید، روی تخت شاهی که پشت فیل بسته اند می‌نشیند و در دو طرف او صف وزیران و اعیان و درباریان حرکت میکنند. بر روی گردن فیل پادشاه افسری ایستاده که گرزی از طلای خالص که آن مزین به زمرد است در دست دارد هزاران مرد سپاهی با لباس‌های زربفت بر روی فیل‌های نشستهاند که بدن آنها با زره پوشانده شده است این گروه گارد پادشاه را تشکیل می‌دهند در مدتی که موکب سلطنتی در حال حرکت است افسری که پیشاپیش موکب روی همان فیل نشسته است گاه و بیگاه بانک میزند ای مردم پادشاه بزرگ و والای خود را نگاه کنید پادشاه توانا و دادگر پادشاه مطلق کشور هندوستان که قصدش به یکصد هزار دانه یاقوت ناب زینت یافته پادشاهی که صاحب بیست هزار عدد تاج آراسته به الماس است پادشاه سرندیب آنچنان به عدالت دادگستری میپردازد که در سراسر کشور او قاضی وجود ندارد. زیرا ملت او نیازی به قاضی ندارد تا در میان آنها به داوری بنشیند مردم خودشان آنچنان رعایت حقوق یکدیگر را می کنند و به حق و پای پایبند هستند که هرگز اختلاف و مشاجره بین آنها پیدا نمی شود و خودشان قاضی خود و رعایت کننده عدالت و حقوق یکدیگرند خلیفه هارون رشید از شنیدن این سخنان در مورد شاه و مردم و حقشناسی شناسی روح عدالتخواهی خواهی آنان دچار حیرت و شگفتی فراوان شد و آنگاه گفت خردمندی و تدبیر شاه از متن نامه او آشکار است و آنچه را گفتی گواه بد درستی اظهارات شاه در نامه‌ی اوست ماید تراف کنم که چنین مردمی شایسته داشتن چنین پادشاهی هستند و چنین پادشاهی هم استحقاق داشتن چنین ملتی را دارد پس از این سخنان خلیفه مرا مرخص کرد و مرا با هدایای گرانبهایی به خانه فرستاد سندباد در اینجا سخنان خود را به پایان رسانید و یکصد عدد سکه طلا به هندباد پرداخت و همه از قصد او خارج شدند و قرار شد که روز بعد به ترتیب هر روز برای شنیدن سفر هفتم به قصر بیایند هفتمین و آخرین سفر سندباد بحری وقتی از سفر ششم دریایی خود برگشتم فکر سفر رفتن را از ذهن خود خارج کرده بودم و می از خانه و خانواده دور شوم. زیرا دیگر آمادگی نداشتم که خود را با خطرات تازهی روبرو سازم به این نتیجه رسیدم که به جز استراحت و رفع خستگی به هیچ کار دیگری نپردازم. یکی از روزهایی که گروهی از دوستان میهمان من بودند و مشغول پذیرایی از آنها بودم خدبتکانم نزد من آمد و گفت فرستاده خلیفه آمده و می‌گوید باید به حضور خلیفه بیایی از سری میز بلند شدم و افسری را که خلیفه فرستاده بود ملاقات کردم او به من گفت که خلیفه با شما کار دارد و باید به حضور او بیایی همراه فرستاده خلیفه راه افتادم و به حضور خلیفه بار یافتم مجاهده کردم که خلیفه بر تخت نشسته است من هم به نشانه ادب زمین را بوسیدم خلیفه فرمود برخیز که میخواهم تو را مأمور انجام کاری کنم و بعد ادامه داد سند باد میخواهم که تو پاسخ مرا همراه با هدایایی برای شاه سرندی ببری و این مأموریت را فقط تو میتوانی به انجام رسانی من در مقابل محبت و انسانیت آن پادشاه ناچار به پاسخ هستم دستور خلیفه برای انجام این سفر غیرمنتظره مرا من دچار ترس کرد پاسخ دادم یا امیرالمؤمنین من هرچی را که شما دستور فرمایید اطاعت خواهم کرد ولی در کمال فروتنی و بندگی به عرض امیر بزرگوار می رساند که من تمام عمر را در سفرهای دریایی و روبرو شدن با خطرهای فراوان گذرانده و اینک قصد استراحت دارم علاوه بر این با خود عهد کردم دیگر از شهر بغداد خارج نشوم و بقیه عمر را با خانواده‌ام بگذرانم برای اینکه بیشتر توجه امیر را به سوی خود جلب کنم ناچار شدم شمی از شهر سفرها و خطراتی را که با آن روبرو شده بودم به عرض او برسانم امیر هم با برد و شکی بایی سخنان من مورد توجه قرار داد. با پایان سخنان من، امیر فرمود، "سرگذشت تو را شنیدم. بسیار حیرت و شنیدنی است. میدانم که با سختی ها و خطرها رو به شده ای. اما من از تو می که این مأموریت را به خاطر من بپذیری و به این سفر تندر دهی. از تو هیچ انتظار دیگری ندارم، مگر که به سرزمین سرندیب سفر کنی، و پیغام و هدایایی مرا به شاه آنجا تستین کنی. پس از آن آزادی و هر طور که بخواهی میتوانی می توانی زندگی کنی. امیر ادامه داد و گفت من اخلاقا به شاه سرندیب خود را ملیون می و ناچارم به هر نفیز جفتار بزرگانه او را بدون پاسخ نگذارم. از این گذشته شعر نشوکت من به من حکم می کنن که آنچه شایسته مقام شاه هست به جای آورم. زیرا او هم مرا خلیفه مسلمین میداند و امیر مؤمنان جهان و من نباید تا ابد مرهون محبانی های شاه جزیره سرندی باقی بمانم من که دیدم امیر اصرار دارد این مأموریت انجام شود و دلائله هم برای آن بیان کرده به اراده امیر سر تسلیم فرود آوردم و به او گفتم اوامل شما را به موقع اجرا خواهم گذاشت امیر از اطاعت و وزیف شناسی من غرق شادی شد و دستور داد یک هزار سکه ی طلا جهت هزینه سفرم به من پرداخت کنند. من در ظرف مدت چند روز خود را رو آماده سفر کردم و همین که نامه و هدایایی خلیفه را به من تحویل دادند من هم از بقداد به بندر بچه رفتم و در آنجا سوار کشتی شدم و به مقصد سرندیب کشتی براه افتاد. سفر بسیار خوب و لذت بخشی بود بالاخره به جزیره سرندیب وارد شدیم و کشتی لنگر انداخت در سرنده مموریت خود را با وزرای پادشاه در میان گذاشتم و از ایشان درخواست کردم که هر زودتر وقت شرفیابی حضور پادشاه را تعیین کنند وقت تعیین شد و با احترامات و تشریفات ویژه‌ای مرا به حضور شاه بردند و وارد قصد شدم و بر طبق روش همیشگی زمین را به نشانه ادب به سلطان بوسیدم شاه فرمودند سندباد. به تو خوشا میگویم که بار دیگر به حضور ما بار یافتی از دیدن تو بسیار خوشحالم، خدا را شاهد میگیرم که از وقتی که از نزد ما رفتی تا خونون همه اش به فکر تو و یاد تو هستم. چه ایام خوش وخاطر انگیزی بود روزهایی که تو به دربار می آمدی و من از صحبت با تو و حضور تو خوشحال بودم و لذت میبردم. بردم. سخن که به پایان رسید، من هم تعارفات و احترامات خود را بهجا آوردم و از مراهم شاه نسبت به خود سپاسگزاری کردم. نامه و هدایای خلیفه را در نهایت احترام به شاه تقدیم کردم و آثار شادی فراوان از سیمای پادشاه نمایان بود هدایای خلیفه هارون و رشید عبارت بود از یک دست پوشاک کامل زربفت و ارزش یک هزار سکهٔ طلا و پنجاه دست قبای گرانبها و یکصد دست جامعه های مختلفی دیگر که از بهترین كتانهای شهرهای قاهره کوفه اسکندریه بافته شده بود یک عدد تختخواب سلطنتی به رنگ سرخابی و نوع دیگری از همان تختخواب به رنگ دیگر یک زرف عقیق بزرگ به زخامت 3 سانتیمتر و پهنای سی سانتیمتر که روی پایه برجسته قرار گرفته بود و نشان می‌داد مردی کمان به دست در حال رها کردن تیری به سوی شیری است از جمله هدایای خلیفه میز بسیار گرانبهایی بود که طبق روایات و شایعات جاری متعلق به سلیمان پادشاه بزرگ یهودیان بوده است نامی خلیفه خطاب به شاه سرندیب به شهر زیر بود با درود فراوان به رهبر خردمند و راستین به پادشاه توانا و دانا از سوی عبدالله حارون و رشید که خداوند بزرگ او را بر این تخت پر افتخار که یادگار نیاکان اوست نشانده ما با شادی فراوان نامی شما را دریافت کردیم و این نامه را از سوی دستگاه خلافت گلزار گلهای دانش و درایت برای شما فرستادیم. امید و انتظار ما چنان است که از خواندن آن شاد شوید و از نیت نیک ما آگاهی یابید و برایتان خوشنودی به بار آورد. خداوند شما را پایدار و تندرست نگهدارد. پادشاه جزیره سرندیب از خواندن این نامه بسیار خوشنود گرد و از اینکه خلیفه دوستی او را پذیرفته و خود را دوست او دانسته است، از شادی در پوست خود نمی‌گنجید. پس از تسلیم نامه و هدایا از پادشاه درخواست کردم اجازه دهد تا به شهر خود برگردم. البته برای او دشوار بود که من به این زودی برگردم و مایل بود چندین روز نزد او بمانم. ولی سرانجام انجام اجازه داد. اما با ناخوشنودی و برخلاف میل خود. با همه اینها به شاه حالی کردم که مجبورم به برگشت و نمیخواستم از من رنجشی در دل حس کند. هنگام خداحافظی هدایای بسیار شایسته‌ای به من داد که همراه خود به بغداد ببرم من هم با سپاسگزاری از مهربانی‌های های شاه اجازه گرفتم که از حضورش مرخص شوم. فکر میکردم بدون معطلی بر کشتی نشسته و به سوی بقداد ده سپار شوم، ولی این بار سرنوشت ناسازگاری در انتظارم بود و خداوند نخواسته بود که با خوشنودی و به طور دلخواه سفر خود را به پایان آورم. هنوز از حرکت کشتی بیش از سه چهار روز نگذشته بود که ناگهان دزدان دریایی به کشتی ما آوردند و چون کشتی بازرگانی بود و وسیله برای دفاع نداشت به زودی در اختیار دوستان قرار گرفت. چند تن از کارکنان کشتی به مقاومت برخاستند ولی به زودی جان خود را از دست دادند. ولی من و سایر سرنشینان کشتی که مردم محتاطی بودیم جان سالم به در بردیم. اما دوستان دریایی ما را نکشتند و به اصارت خود درآوردند. آوردند. ما را لخت کردند و لباس پاره پاره و کهنهی به ما پوشاندند. و ما را به جزیره بسیار دور دستی بردند و آنجا در بازار بنده فروشان ما را فروختند. بازرگان نیک نفسی مرا خریداری کرد و به خانه اش برد و لباس نو و گران قیمت به من داد. بازرگان که نمی‌دانست من هم بازرگان هستم از من پرسید چه کاره ای؟ من به او پاسخ دادم که من بازرگان بودم و در دریا گرفتار دزدان دریایی شدم و آنها تمام اموال مرا غارت کردند، بازرگان گفت بگو ببینم آیا کمانکشی و تیرانداختم را بلدی؟ به او پاسخ دادم که در روزگار جوانی کمانکشی و تیراندازی با آن یکی از بهترین ورزش ها و سرگرمی های من بوده است و هنوز هم در این سن و سال آن را فراموش نکردم. بازرگان وقتی سخنانم را شنید تیر و کمانی به دستم داد و مرا روی فیل پشت سر خود نشانید. به جنگلی برد که تا خانه او چندین فرسنگ فاصله داشت. وقتی به آنجا رسیدین به من گفت پیاده شو و از درخت مقابل بالا برو و در آنجا بنشین در این جنگل گله‌های فیل به حد وفور دیدی می‌شوند و همین که فیل‌ها در تیررس قرار گرفتند تو از جایگاه خود از بالای درخت آنها را شکار کن و همین که فیلی روی زمین افتاد فوراً بیا و به من خبر بده وقتی سخنان بزرگان پایان یافت مقداری آذوقه و خوراکی در اختیار من گذاشت و به طرف شهر برگشت و من هم بالای درخ رفتم و تمام شب را در آنجا گذراندم در طول شب فیلی از آن ناحیه عبور نکرد ولی هنگام صبح همین که خوشید از مشتق سرزد فیلهای بسیاری را دیدم که به صورت گروهی در حرکت بودند من چندین تیر به سوی آنها رها کردم و عاقبت یکی از آنها به روی زمین افتاد و سایر فیلها اقب نشینی کردند و از آنجا دور شدند و به من فرصت دادند تا از درخت به زیرایم و خبر شکار فیل را به اطلاع سرور خود برسانم هنگامی که بازرگان خبر را شنید قضایی بسیار چرب نبی به من داد و مهارت و چابکی مرا در شکار کردن فیل ستود و آنگاه من را در آغوش گرفت و نوازش کرد بعد از آن با هم به جنگل رفتیم و در محلی که فیل افتاده بود گودی عمیقی کندیم و جسد بزرگ فیل را در آن جای دادیم و روی آن را پوشاندیم تا بعد از چند روز گندیده شود و آن وقت دندان فیل را که همان آج باشد به راحتی جدا کنیم. من دو ماه پیاپی پی به شکار کردن فیل ها ادامه دادم و هر روز یک فیل را به تیر کمان از پای در میآوردم. تا اینکه یک روز صبح از بالای درختی که میان شاقه های آن نشسته بودم مشاهده کردم گروهی از فیل ها به سوی درخت آمدند. و به جای آنکه ماننده هر روز از مقابل درخت عبور کنند، همین که در پای درخت رسیدند ایستادند، و آنکه که پیش فیلها حرکت می‌کرد، جلو آمد و گوش خراشی کشید، و همه فیلها هم نعره کشیدند، به طوری که از فریاد آنها همه جا می فیلها درختی را که در بالای آن بودن محاصره کردند، و خرطومهای خود را به سمت بالا بلند کردند، و چشمهایشان را به سوی من خیره ساختند. فریاد آنها در تمام جنگل منعکس می شد. من بسیار ترسیده بودم و مانند مرده بی حرکت به شاخه های درخت تکیه کرده بودم و این صحنه به قدری ترسناک بود که تیرها و کمانم از دستم به پایین درخت افتاد. ترس من بیاساس نبود چون بعد از آنکه که فیلها همه به سوی من متوجه شده بودند یکی از بزرگترین فیلها خورتوم خود را دور ریشه درخت پیچانید و آنچنان با نیرومندی و قدرت خود آن را زیر فشار درآورد که بعد از چند دقیقه درخت مقاومت خود را از دست داد و از ریشه درآمد و درخت با من روی زمین افتاد. در این هنگام فیل درشت اندام با خورتوم خود مرا از زمین بلند کرد و روی پشت خودش گذاشت و من هم مانند آدم بیجانی بدون حرکت روی پشت او قرار گرفتم. شانههایم از ترس میلرزیدند. فیل بعد از آنکه مرا در پشت خود نشاند و پیشاپیش سایر فیلها قرار گرفت و به راه افتاد و بقیه هم دنبال او روانه شدند مسافت بسیاری رفتند تا به محلی رسیدند در آنجا مرا به زمین گذاشت و با بقیه فیل‌ها رفتند و ناپدید شدند من خودا در عالم روی تصور می‌کردم بالاخره پس از مدتی که روی زمین دراز کشیده بودم وقتی مطمئن شدم فیلها از آنجا اند از جا برخواستم و جاده پهن و درازی را که به تپهی منتهی می در پیش گرفتم و چون به بالای تپه رسیدم سحنه عجیبی دیدم در بالای تپه استخوان آجهای فیلها به مقدار بسیار فراوان روی زمین را پوشانده بود و پیش خود حد زدم اینجا باید گورستان فیلها باشد در لحظه تماشایی اندیشه های در ذهنم گذشتند و در دل خود به هوشیاری و قریزه فوقلاده این حیوانات آفرین گفتم و آنها را تحسین کردم. دیگر کمترین تردیدی نداشتم که این تپه گورستان فیل هاست و آنها عمدن مرا به این نقطه آورده تا من دست از آزار و کشار آنها بردارم و هر مقدار که آج فیل میخواهم در اختیار گیرم. زیرا من فقط به خاطر دندانهای آنها فیل های بیگناه را میکشتم. من بیش از این در آن محل معطل نشدم و به شهر مراجعت کردم بعد از دو شبانه روز راه به سراغ مرد بازرگان رفتم و از او خواستم که با من به گرستان ها بیاید او وقتی مرا دید بسیار خوشحال شد و گفت من وقتی دیدم از تو خبری نشد بسیار نگران شدم و به جنگل برگشتم و به محلی که تو بالای درخت رفته بودی رفتم دیدم درخت از ریچه درآورده شده و تیرها و کمان تو هم روی زمین افتاده است و بعد از آنکه مدتی بیهوده و بینتیجه در جستجوی تو برآمدم، ناامید برگشتم. بازرگان با هیجان ناراحتی از من پرسید: چه بلایی به سر تو آمده است؟ من هم ماجرا را به طور کامل برایش بیان کردم و شب را استراحت کردیم و صبح زود به اتفاق بازرگان به جنگل رفتیم و من او را به سوی تپه‌ای که محل آجها و استخانهای فیل‌ها بود راهنمایی کردم. بعد از دو روز و دو شب راهپیمایی به بالای تپه رسیدیم همین که چشم بازرگان به آن همه آج افتاد فریادی از شادی برکشید و گفت باور کردنی نیست این همه آج در یک جا انباشته باشد اینجا معدن آج است یعنی گورستان فیلها. چه خوب شد که اینجا را کشف کردی به او گفتم آنچه برای شهر دادم حقیقت بود ما هم تمام آجها را رو روی فیلی که با آن آمده بودیم بار کردیم و به سوی شهر برگشتیم آنقدر آج روی فیل گذاشتیم که دیگر به سختی جای سوار شدن برای خودمان باقی مانده بود. انگاه بازرگان به من گفت تو برادر عزیز من هستی و من در برابر این گنج فراوان و ها تو را آزاد می کنم و از این پس دیگر زر خرید من نیستی و انسان آزادی هستی. خداوند هرچه می خواهی به تو بدهد و سلامتی و سعادت به تو ببخشد و روزی فراوان در اختیارت بگذارد. بعد از آنکه بازرگان از من سپاسگزاری فراوان کرد به سخن ادامه داد و گفت من همه حقیقت را به تو نگفتم و چیزی را از تو پنهان داشته بودم و آن این است که فیل این جنگل هر سال تعداد زیادی از غلامان و بردگان م...